حامون جادو زدایی شده هنگامی که آلوریک دریافت سرزمین پریان را گم کرده است غروب شده بود و دو روز و یک شب بود که از ارل حرکت کرده بود برای بار دوم شب را در آن حامون خالی شده از سرزمین پریان خوابید. و افق شرقی در غروب آفتاب در آسمان فیروزعی واضح بود افق سیاهی که سخرها دندان دارش کرده بودند بی هیچ نشانی از سرزمین پریان و شفق سوسو میزد اما شفق زمینی بود و آن صد متراکمی نبود که آلوریکی می جز و بین آن سرزمین پریان و دشتهای ما قرار دارد و ستارگان بیرون آمدند و باز همان ستارگانی بودند که میشناسیم و آلوریک در زیر این سوبر فلکی آشنا خابی. در حالی که خیلی سردش شده بود، در سپید دم خالی از پرنده بیدار شد. صداهای قدیمی را میشنید که ضعیف شده بودند و از دوردست صدا در میدادند. آهسته دور میشدند، مانند رویاهایی که به سرزمین رؤیاها باز میگردند. نمیدانست این صداها بار دیگر به سرزمین پریان باز میگردند یا سرزمین پریان از آن هم دورتر رفته است. تمام افق شرقی را گشت و همچنان هیچ چیز جز سخره های آن سرزمین متروک ندید این بار دیگر به سوی دشت هایی که می بازگشت بدون هیچ اصلی از آن بیتابی در میان سرما برگشت و اندک, اندک در نتیجه راه رفتن و کمی بعد به خاطر خورشید پاییزی گرما به سراغش آمد تمام روز راه رفت و هنگامی که بار دیگر به کلبه چرمساز رسید، خورشید داشت بزرگ و سرخ می شد. تقاضای غذا کرد و مرد پیر به او خوش آمد گفت. تازه دیگش را بر اجاق گذاشته بود تا شام را آماده کند و پیش از اینکه آلویدیک در کنار میز قدیمی بنشیند، شامی شامل ران مرغ، گوشت خارپشت و خرگوش آماده کرده بود. مرد پیر تا هنگامی که آلوریک مشغول خوردن غذا بود، شام نخورد و در چنان سکوتی به او خدمت کرد که آلوریک پنداشت فرصت مناسب پیش آمده و رو به مرد پیر کرد و تکیه از گوشت پشت خرگوش به او تعرف کرد و موضوع سرزمین پریان را پیش کشید. گفت شفق از اینجا دور شده است. مرد پیر گفت بله، بله معلوم نبود در ذهنش چه میگذرد اما در صدایش هیچ منظوری نبود آلوریک گفت کی رفت میزبان گفت شفق سرور من آلوریک گفت بله مرد پیر گفت آه شفق آلوریک گفت آن صد و بی آنکه بداند چرا صدایش را پایین آورد و ادامه داد که بین اینجا و سرزمین پریان است با شنیدن نام سرزمین پریان تمامی آن هم فکری از چشم های مرد پیر رخت بر بست گفت آه. آلوریک گفت مرد پیر تو میدانی سرزمین پریان کجا رفته است؟ مرد پیر گفت رفته است آلوریک اندیشید که آن شگفتی معصومانه باید حقیقی باشد اما دست کم او می دانست که پیش از آن کجا بوده است. تنها دو دشت با خانه او فاصله داشت. گفت سرزمین پریان زمانی در دشت کناری بود و چشم مرد پیر به درون گذشته رفت و چنان خیره شد که گویی بر روزگار گذشته چشم دوخته است. والوریک با چشم او را بر جای نگاه داشته بود. گفت تو سرزمین پریان را میشناختی؟ مرد پیر باز هم پاسخ نداد. آلوریک گفت: «تو میدانستی مرد کجاست؟ چرمساز پیر گفت: «من پیرم و هیچکس را ندارم تا از او بپرسم. هنگامی که چونین گفت آلوریک دانست به همسر پیرش میاندیشد و از آن گذشته دانست که اگر زن پیر هم هنوز زنده بود و در آنجا ایستاده بود، خبری از سرزمین پریان نداشت. دیگر سخن چندانی برای گفتن وجود نداشت. اما هرچند دریافته بود که امیدی نیست. گونه گستاخی او را بر سر موضوع نگاه می داشت. گفت چه کسی در شرق اینجا زندگی می کند؟ مرد پیر پاسخ داد در شرق. سرور من مگر شمال و جنوب و غرب وجود ندارند که نیازمند نگریستن به شرق باشید نگاهی ملتم بر چهرش بود اما آلوریک به آن توجه نکرد گفت چه کسی در شرق زندگی می کند پاسخ داد سرور من هیچ کس در شرق زندگی نمی کند و البته این سخن راست بود آلوریک گفت پیش از این در آنجا چه بود؟ و مرد پیر برگشت تا به دیگش سر بزند و هنگامی که برگشت زیر لب چنان آهسته که شنیدنش دشوار بود گفت گذشته مرد پیر نبیش از این چیزی می گفت و نه آن چرا گفته بود توضیح می داد بنابراین آلولیک از او خواهش کرد برای شب بستری به او بدهد و میزبانش همان تخت قدیمی را به اونشان داد که آلوریک از میان تعداد سالهای نامعلوم زندگیش به یاد می آورد. آلوریک تخت را پذیرفت و دیگر صحبتی نکرد تا پیرمرد بتواند به سراغ غذای خودش برود و کمی بعد به خواب جرفی فرو رفت. خوابی سرانجام گرم و آرامش بخش و در همین هنگام میزبان آهسته چیزهای بسیاری را در اندیشش مرور می کرد که الوریک پنداشته بود هیچ چیز از آنها نمی داند آخرین روزهای اکتبر بود صبح روز بعد پرندگان دشتهای ما آوازخانان آلوریک را بیدار کردند چرا که آن بام داد و را به یادشان آورده بود آلوریک از جا برخاست. از خانه خارج شد و به بالاترین بخش آن دشت کوچک رفت که در امتداد دیوار بدون پنجره خانه مرد پیر قرار داشت دیوار رو به سرزمین پریان خانه پیرمرد از آنجا به شرق نگریست و تا خط منحنی آسمان همان هامون توهی و متروک و صخره ای را دید که روز پیش و پری روز هم در آنجا بود سپس چرمساز به او صبحانه داد و پس از صبحانه باز بیرون رفت و باز به هامون نگریست و در موقع صرف شام به همراه میزبانش که با کمرویی در غذا با او شریک شده بود یک بار دیگر به موضوع سرزمین پریان نزدیک شد و چیزی در سخن یا خاموشی مرد پیر بود که آلوریک را امیدوار کرد که حتی اکنون هم ممکن است او خبری از مکان کوههای آبی روشن سرزمین پریان داشته باشد بنابراین مرد پیر را از خانه بیرون برد و به سوی شرق برگشت مرد پیر همراهش با بیمیلی به آن سونه است آلفریک به سخر ای مشخص نزدیکترین و قابل توجهترین سخره اشاره کرد و امیدوار به شنیدن خبری قطعی از چیزی قطعی گفت چند وقت است که این صخره آنجاست؟ و پاسخی چون درودی بر شکوفه‌های سیب به امیدش داده شد آنجاست و باید آن را بپذیریم ظیریم. بودن این پاسخ آلوریک را گیج کرد و هنگامی که دید پرسش‌های منطقی درباره چیزهای مطلق پاسخی منطقی به دنبال ندارد از به دست آوردن اطلاعات کاربردی برای راهنمایی سفر خیالیش ناامید شد. بنابراین تمام بعد از ظهر در جانب شرقی کل به قدم زد و به هامون توهی نگریست. هامون هیچ تغییری نمی کرد، هیچ حرکتی نمی کرد، هیچ گوه آبی روشنی پدیدار نشد، هیچ نشانی از سرزمین پریان باز نگشت. در آخرین پرتوهای خورشید سخرها درخشش تاری یافتند، و همچنان که با هر دگرگونی زمین دگرگون می شدند، پس از غروب به تیرگی گراییدند اما بی هیچ افسونی از سرزمین پریان سپس آلوریک تصمیم گرفت سفر بزرگی را آغاز کند به کلبه بازگشت و به چرمساز گفت تا ای که آلوریک می تواند حمل کند برایش ساز و برگ و توشه راه بخرد و در هنگام شام مشخص کردند که چه چیزهایی را باید تهیه کنند. آنچه باید می داشت را مشخص کردند. و مرد پیر قول داد روز بعد به میان همسایگان برود و گفت چه چیزی را از چه کسی می تواند بگیرد. شاید هم اگر خدا شکارش را موفق می کرد می توانست بیشتر بگیرد. آلوری تصمیم گرفته بود چندان به سوی شرق برود تا سرزمین گمشده را بیابد. و آلوریک زود خوابید و چندان خوابید که بازمانده خستگیش از تعقیب سرزمین پریان از میان رفت. مرد پیر پس از اینکه از شکار بازگشت، او را بیدار کرد. و هنگامی که آلوریک صبحانه اش را میخورد جانورانی را که شکار کرده بود در دیگ و روی آتش گذاشت. سپس در تمام روز در کشتزارهای حاشیه دشتهایی که میشناسیم از این خانه به آن خانه رفت و از یکی از همسایگانش گوشت نمک زده از یکی دیگر نان و از دیگری پنیر گرفت و در حالی که این بار سنگین را میکشید، به خانه بازگشت تا شام را آماده کند. بالوریک با تمام آن چرا که مرد پیر با خود آورده بود در یک کیسه انباشت و کمی از آن را هم در خورجینش گذاشت. و مشک آب خود و دو مشک دیگر را که میزبانش از پوست زخیم ساخته بود پر کرد. چون در تمام آن سرزمین متروک هیچ جویباری ندیده بود و بدین ترتیب با تجهیزاتش چند گامی از کلبه دور شد و دوباره به هامون خالی شده از سرزمین پریان نگریست. خوشنود از اینکه که میتواند توشه ای برای دو هفته با خود ببرد بازگشت. و شامگاه نیز هنگامی که مرد پیر تکه‌هایی از گوشت ماکیان آماده می‌کرد، آلوریک در سمت بی کلبه ایستاد و باز به سرزمین متروک نگریست. باز امیدوار بود از میان ابرهای که به هنگام غروب رنگین می‌شدند، آبی روشن کوه‌ها را ببیند و هیچ چکادی ندید. و خورشید غروب کرد و آخرین روز اکتبر بود. روز بعد آلوریک در کلبه غذای خوبی صرف کرد و توشه سنگینش را برداشت و بهای آن را به میزبانش داد و به راه افتاد. در کلبه به سوی غرب باز شد و مرد پیر سمیمانه و با بدرود و خدا به همراه او را تادم در بدرقه کرد. اما خانه اش را دور نزد تا او را که به شرق می رفت بنگرد. همچنین از آن سفر سخن نمی گفت. گویا از دید او تنها سه نقطه مقصد وجود داشت. خورشید درخشان پاییزی هنوز بالا نیامده بود که آلوریک از دشتهایی که میشناسیم به حامون خالی شده از سرزمین پریان رسید که هیچ موجود دیگری به آن نزدیک نمیشد. کیسه بزرگش بردوشش و شمشیرش به کمرش بسته شده بود. درختان بهاری خاطرش که دیده بود همه پژمرده شده بودند. و ترانه ها و صداهای قدیمی که در آن سرزمین بودند همه به اندازه یک آه ضعیف شده بودند و گویی تعدادشان هم کم شده بود انگار برخی از آنها تا آن زمان مرده یا به سرزمین پریان بازگشته بودند آلوریک تمام روز را با نیروی آغاز یک سفر پیش رفت نیرویی که به او کمک می کرد با وجود بار سنگینی که بردوش داشت و ملحفه بزرگی که چون شنل سنگینی به دور شانه بسته بود و دسته ای هیزم در آن میبرد و چوب دستی در دست راستش به پیش برود. با آن چوب دست و کیسه و شمشیرش نگاره ناهمه هنگی ساخته بود اما او تنها یک اندیشه، یک تلقین، یک امید را دنبال می کرد و بنابراین همان غرابتی را داشت که تمام انسان هایی که چنین می کنند دارند. ظهر ایستاد تا غذا بخورد و استراحت کند و سپس آهسته بار دیگر به راه افتاد و تا هنگام غروب پیش رفت حتی آن هنگام همان گونه که در نظر داشت استراحت نکرد چون هنگامی که شفق آمد و به سنگینی بر آسمان شرقی گسترد از استراحت دست کشید و کمی جلوتر رفت تا ببیند نکند همان شفق متراکم جرفی باشد که سرحد دشتهایی که میشناسیم را میساخت. و آن را از سرزمین پریان جدا می کرد. اما همچون همیشه همان شفق زمینی بود و هنگامی که ستارگان بیرون آمدند همان ستارگان آشنایی بودند که به زمین می نگرند سپس در میان سخره ناهموار و بیگل و دراز کشید و نان و پنیر خورد و آب نوشید و هنگامی که سرمای شب اندک, اندک آغاز به گستردن در هامون کرد با دسته کوچک هیزمش آتش کوچکی بر افروخت و در کنار آن دراز کشید و شنل و ملحفهاش اش را به دورش پیچید و پیش از آن که نیمسوزهای هیزم خاموش شوند در خواب جرفی فرو رفت. سپیددم بدون صدای پرنده‌ای یا زمزمه برگ ها یا سبزه ها فرار رسید. سپیددم در سکوت مرگبار و سرما فرا رسید. و هیچ چیز در تمام آنهامون به بازگشت نور خوش آمد نگفت. آلوری کنگامی که دسته بیشکل و کدر آن سخره تیز را دید، اندیشید که اگر تاریکی برای همیشه بر روی آنها باقی میماند، بهتر بود. اکنون که سرزمین پریان رفته بود، تاریکی بهتر بود. و هرچند با سرمایه لرزاور سپیددم دم، در ماندگی آن مکان از جادو خالی شده وارد روحش شد، امید آتشینش هنوز می درخشید و به علت وجود همین امید برای غذا خوردن در کنار دایره سرد و سیاه آتش تنهایش وقت چندانی نداشت و همین امید او را با شتاب به سوی شرق به سوی سخره راند. و در تمام آن بامداد بدون همراهی برگ یا سبزی سفر کرد. مدت بود که پرندگان زرینی که پیش از آن دیده بود به سرزمین پریان باز گشته بودند و پرندگان های ما و تمام موجودات زندهایی که میشناسیم از آن مکان خالی پرهیز میکردند. آلوریک همانند انسانی که به درون خاطراتش باز میگردد تا منظرههای به یادمانده را باز بیند تنها سفر میکرد و به جای منظرههای به یادمانده در مکانی بود که هر زیبایی از آن رفته بود آن روز بارش کمی سبکتر از روز پیش اما خودش خسته تر بود چون اکنون بیشتر از روز پیش فرسودگی را حس می کرد. در نیم روز مدت درازی استراحت کرد و سپس به پیش رفت هزاران صخره بر افق کشیده شده و آن را دندانه دار کرده بودند و تمام روز هیچ کرسوی از های آبی روشن نیامد غروب از بازمانده یه آتش دیگری برافروخت. شعله ی کوچکش تنها در آن خلق بالا می‌رفت و چونین می نمود که گویی آن تنهایی دیواسا را آشکار می کند. در کنار آتش نشست و بلی را زل اندیشید و نمی‌خواست امیدش را از دست بدهد. هر چند نگاهی زود گذر به آن سخره ها می به او هشدار دهد که امیدوار نباشد. چون چیزی در منظره بین ازشان، از هامونی سخن می گفت که آنها را پرورده بود و می گفت که هامون مطلق است سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها قصه هایی از غول ها و کوتوله ها ماجراهایی از جادوگران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 کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افسانهای داستان صوتی